دید ممنون بفرمایید خدا نگهدار همه شما بفرمایید آقا جو بفرمایید بفرمایید جزاكم الله خیرا وقت نماز هست سلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده و ونؤمن به نؤمن بهی و نتوکلو علیه و نسلی و نسلم سراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبل القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله طيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن ایل قیام يوم الدین. اللهم كل وليك الهجت ابن الحسن، صلواتك عليه و آبائه في هذه الساعة و كل ساعة، بليا و خافدا و قائد و و حتى تذكره ارزقته و تمتعه في کم و نفسی عباد الله به تقوا الله و کم من عقابه خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا حریم نگهداری برای ذات مقدس ربوبی می نمایم و از عقابش پرهیز می دهم در روایتی از حضرت مولا علی علیه السلام رسیده والله ما ارا عبدا یتقی تقوی تنفعو حتی یخزن لسانه تقوی سودمند از رهگذر گذره حفظ زبانه کسی که نتونه این زبانشو کنترل کنه بسیاری از گناهان از این زبان بلند میشه مرحوم فیض کاشانی هجده آفت برای زبان ذکر کرده کتاب و آفات لسان یکی از علمای بزرگ این را رسونده به سی آفد نویسنده دیگری رسونده به دویست آفد جرمه و جرمه چبیر الله با حفظ زبان کنترل زبان به اون تقوای نافع دست پیدا کنیم در خطبه های اول سبک زندگی قرآنی با مهوریت یا ایوهاللزین آمنوهای قرآن رو داشتیم در خطبه گذشته آیه دویست سوره آل امران رو محور قرار دادم که یا ایوهاللزین آمنس برو و سا برو و رابطو و تقالله لعلکم تفلحون. در این آیه شریفه چهار عامل اساسی موفقیت در همه ارساها بیان شد به خصوص در عرصه زندگی اجتماعی دینی یک انوان انوان صبر است اِتْ برو. این در حوزه فردی است بعد دارد که صابر و از باب مفاعله است به فعل طرفینی معمولا باب مفاعله به کار میره گرچه یک طرفی هم گاهی به کار میره مثل آقب تلوس دو و دنبالش کردن و امثال زالک ولی اصل این سیغه مسابره مفاعله به معنای کار طرف این معنای آیه اینه همون طوری که دشمنان شما وای میستن خسته نمیشن مبارزه میکنند صبر شما کمتر از اونها نباشه در یکی از تفاصیر آمده ساب رو اعداء الله فی الجهاد ای قالبو هم فی سبر. صبرتون بیشتر از اونها باشه الا شدا حرب ولا تكونوا اقل صبرن منهم صبر شما از اونها کمتر نباشه این در عرصه گروهی و در عرصه اجتماعی است در یه روایتی از امام صادق علیه السلام دو نکته در رابطه با این مسابقه آمده. میفرمد ببینید که جلودار شما چیه؟ اگر جلودار شما حجت خداست این یک و دشمن را هم ببینید کجا ایستاده؟ اینجا وویست؟ فساب رو الا مع بکم در روایت دیگر ساب رو ممن یو وقتی این ویژگی را دیدی وایستید محکم تا آخرین نفر تا آخرین نفس تا آخرین قطره خود پنجت نکته در این خطبه در نظر گرفتم در تفسیر آیه خدمتتون بگم. نکته اول این است زندگی ارزشی در طول تاریخ هزینه بر بوده. کدوم پیغمبر رو پیدا می‌کنید که مشکلات نداشته؟ فقط حضرت یونس اونم بعد از برگشتن از زندان شکم ماهی فآمنو فمتعناهم الهیم. در یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست فرمود این اشد الناس ناست بلان الانبیا سمال لذین یلونه هم سمال امسل و فل بیشترین سختی ها مال انبیا بعد از انبیا، اونایی که به راه انبیا هستند، و بعدش، هر کس مقامش بیش خدا بیشتره، مصیبتش بیشتر. هر که در این بعض مقررتتر است، جامع بلا بیشترش میدهند. این ویژگی زندگی ارزشیست البته نقطه دوم هم اینجا اینه هزینه پرداختن فقط مال ارزشی ها نیست غیر ارزشی ها هم برای زندگی باطلشون هزینه میکنند، برای زندگی باطلشون خرج میکنند. برای زندگی باطلشون کشت میدن ببینید امریکا و امریکایی ها که در همه ارساها فضولی میکنن کشته هم میدن اینا منطقیه تفاوت است بین حضینه که ارزشی ها میدن با حضینه ای که باطل ها و زده ارزشی ها میدن خزینه‌ای که اردشی‌ها میدن می‌مونه براشون از بین رفتنی نیست اونی که باید نگر داره در صندوق قرض الحسن نگرد می‌داره صندوق ذخیره نگرد می‌داره اینا را اما اونی که خدا رو باور ندارند هر چی هزینه خزینه می‌کنند تلف میشه این آیه رو ببینید سوره آل عمران آیه 104 ولا تهنوف ابتغاء القوم خسته نشید از تعقیب دشمن ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون اگر شما مجروح میدید اونا هم مجروح میدن اگر شما کشته میدید اونا هم کشته میدن ولیکن و ترجون من الله مالا یرجون حزینه های شما از بین رفتنی نیست ولی حزینه های اونها همش از بین رفتنی و هبا منصورا هست نکته سوم در این آیه این دشمن از سر سختی برموزش سه هدف رو دنبال میکنه. هدف اول این است که روحیه به بازن سست بشن انگیزه برای ادامه راه نداشته باشه. هدف دوم این است که فرهنگ ما نمیتوانیم رو جا بیندازند هدف سومم اینه که شما رو به تسلیم وادارند مصابره اینه که شما سست نشید نشاطتون از دست ندید و کعین من نبی قاتل معهور بیون کثیر فما ما هنو لما اطابهم فی سبيل الله ما و هنو سوس نشدن نشاتشون از دست ندادن دشمن میخواد که شما سوس بشید ما وهن دشمن میخواد شما به اینجا برسید چه ما نمیتوانیم اما رهروان راه هم بیا ما اوفو ضعیف نشدن به فرهنگ ما نمیتوانیم نرسیدند بلکه باورشون شد که میتوانیم و به فضل خدا دشمن را از پادر میاریم. تکبیر گفتی تکبیر ذکر خداست اما جاش اینجا نبود عرض میکنم که میخوان شما رو به تسلیم وادارن و سکانو تسلیم نشدند، هزینه دادن شهید دادن اما ایستادند پس این را هم جزو مسابره حساب کنیم و سابرو یعنی سوس نشدن برای پیمودن راه حق نکته چهارم این است که رهروان راه حق بدانند برنده نهایی این میدان اوناند للحق دولتون ولل باطل جاولتون در سوبا میزنند دشمنان، اما پیروز نهایی شما متدینین هستید، شما پایبندهای بدین هستید. در سه آیه از قرآن، سوره اعراف، آیه 128، هود، شهلونخ، راساس هشتاد و سه للمتقین آقبت نیک سرانجام نیک از آن اونایی هستند که با خدا هستند اون وقت آیه در این باره الاماشا الله داریم آیاتی که وعده پیروزی حق رو بر باطل میده آیاتی که وعده نصرت خدا به مؤمنین میده آیاتی که وعده پیروزی حزب الله بر حزب شیطان میده آیاتی که سخن از این دارد که این سنت خداست که مؤمنین تنها نمانند دفاع از اونها آیات فراوانه پس خسته شدن افسرده شدن در مسیر راه مؤمنین نیست روزی که بشر اساره شر گردد دین و هدف و شرافتش زر گردد از بحر نجات خلق آید مهدی از یم وجود او ورق برگردد نکته پنجمی که در این آیه هست این است که فرق بین سابرو و تواساو به صبر چیست تفاوتش یک کلمه است صابرو مقاومت عملی تواساو به صبر سفارش زبانی است تا یکی بیهوسله میشه خسته میشه مثلا میگه عجب انقلابی کردیم با تعنی شما تواسو به صبر به او بگویید واقعا عجب انقلابی اسلام زنده شد قرآن زنده شد اهل بیت به صحنه آمدن راه پیمایی بیش از 20 میلیونی در کربلا میگن لبیک یا حسین این همه را نبینیم با کمترین مشکل خسته بشیم تواساو سبر صبر یعنی تا میبینن یکی بی‌حوصله شده نصیحتش میکنن محمد ابن سه سه سال در سیاهچال چال هارونی بود میگوید که یک بار صدها تازیانه به من زدن که اسامی شیعیان امام کاظم را لو بدم گفتم حالا دست نگه دارید ببینیم چه کار میتونیم بکنیم رفیقم فهمید که شل شدم نزدیک لو بدم گفت یا محمد ابن ابی امیر اذکر موقف اکه بین یده الله ابن امیر یادت باشه در محضر خدا هستی چرا سوست میشی این میشه تواثم به صبر اما سابرو مقاومت عملی در برابر دشمنان دین هست پروردگار را به کرمت جبهه حق جبهه توحید را در سراسر جهان بر دشمنان پیروز بفرما بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آیات بالله من از آیات بسم الله الرحمن آیات از آیات و آیات و آیات از آیات از آیات از آیات اعمالنا آیات از الله از آیات از آیات از وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ و على فاطمت الزهراء سیدت نساء العالمين و على الامامین الحسن بالحسین سید شباب اهل الجنت اجمعین و على ائمت المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و بن محمد و موسی بن جعفر و علی ابن موسى و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف الصالح الهجت القائم اللهم افتح له فتحا يسيرا و نصره و عزيزا وصيكم عباد الله بتقوى الله و کم من عقابه اصلاح زبان کنترل زبان از راهای تحصیل تقوا هست در ادامه سخنی که در خطبه قبل از حضرت مولا علی علیه السلام براتون خوندم مولا یک جمله از نبی اکرم نقل می کند چه لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه تا جان انسان سالم نشه درست نشه ایمان انسان درست شکل نمیگیره ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه جان سالم نخواهد شد مگر آنکه زبان کنترل بشه خطبه 176 نهج البلاغه خداوند همه ما را مزن به زینت ارزشمند تقوا و حریم نگهداری برای خداوند بفرماید گرامی می‌داریم یاد و خاطره دو فیلسوف بزرگی که از خطه آذربایجانند و فخر اسلام هفته آینده سالگرد ارتحالشون هست علامه بزرگ مفسر گرانقدر علامه محمد حسین تبا معلف تفسیر المیزان و استاد اساتید بزرگ فلسفه و عرفان در حوزه قلم مبارک ایشان قلم یک رزمنده در عرصه فرهنگی بود اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشان که قبل از سال چهل منتشر شد همچنان تا کنون یک منبع مستند برای مقابله با تفکرات الهادی است علامه محمد تقی جعفری آثار ارزشمند های مفیدی از خودش باقی گذاشت. او هم خودش رو رزماندهای عرصه فرهنگ میدید. گرامی میداریم یاد و خاطره شهیدان عزیز مرزبان در چالدوران که در مساف با ضد انقلاب به شهادت رسیدند و از این رهگذر از همه عزیزان نیروهای مسلح نظامی و انتظامی سپاس گذاریم که با فداکاری‌هاشون کشور رو به عنوان یک کشور زبانزد و نمونه در عرصه امنیت ساختند امیدواریم خداوند حشر این شهیدان رو با اصحاب گرامی سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده شش تحلیل نوشتم تحلیل اول راج مراسم ربین تحلیل دوم خونساشدن شدن اسرائیل جدید در منطقه، تحلیل سوم نابودی داعش در عراق و شام، تحلیل چهارم در رابطه با مسئله سد حریری، تحلیل پنجم در رابطه با حوادث عربستان و تحلیل ششم نقشه راه بردی امریکا علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقیدم به وقت هر وقت وقت تمام شد ولو بندهایی که نوشتم نتونم بگم اون را ترجیح میدم مسئله اربعین به حق یک حماسه بزرگ بی نظیر نه کم نظیر این عادی نیست بیش از 20 میلیون نفر فرادین مسیحی ها هم هستند فرامذهب برادران اهل سنت هم هستند فرا کشور از همه کشورهای دنیا هستند فراقوم فرا, فرا نجاد نظم کاملا مردمی خودجوش اینها رو یک تحلیل داره که آقا فرمود خدا این فرصت رو خلق کرد امیدوارم قدر این فرصت را بدانیم سبات قدم داشته باشیم زائرایی که رفتند و برگشتند زائرهایی که فردا میاند و در حال برگشتند و هفته آینده این اطرسید و شهدار رو حفظ کنند نماز نافله و نماز شبشون دیگه شروع بشه اشالا تا سال آینده عربعین و تا آخر عمر انشالله اخلاق دینی ایثارگری جدا زبان آجزه که بگوید در این عرصه چه عاشقانه به هم دیگه خدمت میکردند، مواکب بین راه همینجا جا از مردم عزیز عراق تشکر نکنیم که این جور عزتمندانه از زائران ابی عبدالله الحسین علیه السلام پذیرایی کردند و باید اینجا از مردم عزیز تهران تشکر کنم دیروز مسیر 17 کیلومتری میدان امام حسین تا مرقد حضرت عبدالعظیم حسنی رو پیاده طی کردن اینجا دو تا حرف دارم حرف اولم اینه اونایی که تهران را تحلیل میکنن زیر پوست تهران را تحلیل میکنن اینو هم ببینند ببینند که آغاز جمعیت رسیده بودند به مرقد پایان جمعیت هنوز میدان شهدا بودند اجتماعی که تبلیغات هم زیاد روش نشد خود جوش آمدن واقعیتش اینه زیر پوست تهران تدین عشق بحلبیته ناهنجاری هم هست ما اونچنان بزرگ نکنند کسانی این غذایا را که این جلوه های مقدس کمرنگ بشه نقطه دوم پیام به بیگانگانه که این رو توجه داشته باشید این جماعتی که اومدن دیروز تربیت شده های مکتب حیحات هستند روز حادثه همین تربیت شده های مکتب سید و شهدان اگر بخواد دشمن کمترین آسیبی به ملت بزرگ ایران بزنه همینها ها دندان های دشمن را در دهانش خرد می کنند. جماعتی که دیروز آمده بودند و این جماعتی که امروز در نماز جمعند و همه جماعتهایی که در سراسر ایران اسلامی الان به عنوان نماز جمعه تشکیل است زبان حالشون زبان قالشون این است ما پیرو حسینی ذلت نمیپذیریم دو از خبرهای مسرت بخش هفته گذشته و هفته های گذشته خونسا شدن توطئه اسرائیل جدید در منطقه بود در خطبه قبل گفتم که این همه پرسی در اقلیم کردستان توت ای برای این که اسرائیل جدید در منطقه درست کنند مسئولین ایرانی سر دسته این اقلیم را نصیحت کردند مسئولین عراقی نصیحت کردند موعظه کردند او لجبازانه ایستاد و این همه پرسی رو برگزار کرد. بعد از برپایی همه پرسی کاملا فهمید که تو میدان امریکا بازی کرده تو میدان رژیم صهیونیستی بازی کرده تو منطقه شون با کمال وقاحت پرچم رژیم صهیونیستی را بلند کردند درود بر دولت عراق سریع جنبید و بلافاصله فاصله چرکوک را از دست اینها گرفت چرکوکی که روزی سی و پنج هزار بشک نفتش غارت می شو. پولهای نفتش به جای اینکه به مردم مظلوم کردستان برسه به حساب شخصی میرفت سریع جنبیدن چرکوکا بدون آنکه از یه دماغ خون ریخته بشه گرفتن و به حمدالله این توطعه خنسا شد به مسئولان جدید اقلیم کردستان اراق میگم یک بار تجربه بسه حالا که تجربه گذشته شما شکست خورد همراه بشید با دولت یک پارچه عراق بازیچه رژیم صهیونیستی و بازیچه رژیم خیانتکار امریکانش نقطه سوم این است که به فضل خداوند تومار گروهک جنایتکار داعش در اراق و در شام پیچیده شد اونهایی که آرزوی دولت بزرگ اراق و شام داشتند رفتند و یک پرونده سراسر خیانت سراسر جنایت برای اینها باقی ماند اگر بخوان تاریخ اصر حاضر را بنویسند، برخی از آن رو باید اختصاص بدن به این ورق سیاه این جنایت کاران صهیونیست سه مطلب اینجا هست مطلب اول این است دنیا باید تشکر کند از نظام مقدس اسلامی از فتوا مرجعیت از دولت عراق ارتش عراق الهشت الشعبی از دولت سوریه چه این خطر رو از کنار بشریت راندند به خصوص از سردار سرفراز حاج قاسم سلیمانی که مسئولیت رو به خوبی ایفا کرد الان در داغ ارتحال پدرشون نشستند از همینجا تسلیت میگوییم باید به این صدار سرفراز افتخار کنند که افتخار برای ایران اسلامی شد نکته دومی که در این عرض گفتنی هست غربیها ها اعتلاف ضد داعش تشکیل دادند، ولی کاملا عوام بود نه تنها کاری ضد داعش صورت ندادند، بلکه مستند میگوییم در مواردی به داعش کمک کردن واقعش اینه اروپا و امریکا رو میخوان منهای داعش مدیریت شده که نیش به ایران بزنه اما نیشی نصیب اونها نشه نکته سومم این است تحقیقا اگر ایران در عرصه مبارزه با داعش وارد نمیشد، این پیروزی ها نبود خیلی نیش زدند چه کار دارید به اینجا ورود میکنید چه کار دارید که ضد داعش خرج میکنید مخارج را به عهده میگیرید فکر کنم اونایی که اون روز این حرف نادرست رو زدن امروز خوب فهمیدند که اگر ورود ایران نبود امروز باید با داعش در خیابان‌های تهران می جنگیدیم باید با داعش در خیابان‌های شهران و اصلاهای بزرگ مرزیمن میجنگیدیم خداوند سایه مقام معظم رهبری رو بر سر ما نگه دارد که این همه موفقیت ها با مدیریت اوست نکته چهارم در رابطه با سعد حریری و استعفای نخست وزیر به اصطلاح لبنان در عربستان عزیزانی که اهل رسانند، رسانه ملی رو میبینند روزنامه ها رو میخونند حرفام هم آنچه که هست که شما می‌دانید هر اول این است که عربستان یک دخالت سریع با کمال پررویی کرد نخوت وزیر کشور دیگر را فراخواند، او را در حبس برد بهش گفت استعفا و متنم باید همین متنی باشه که ما برات میگیم این یعنی تحتل همایگی در عرصه سیاسی تحتل همایگی تر از این نیست و نخص وزیر مصطفی لبنانم میدونست که این بتات پیش میاد میتونست نره در این حال رفت و ذلت خودش را نشان داد نقطه دوم این است که عربستان امیدها به لبنان داشته و داره عربستان که به درستی امام نمیگفت عربستان سعودی میگفت حجاز عربستان لبنان در هم ریخته میخواد لبنان آشوب زده میخواد آرامش در لبنان منفور این دولتی است که پایش در همه جنایات هست مولا علی فرمود لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل سو. سیاه باد روی کسانی که در لبنان توت است یه پاونه پا هستند در عراق توت است یه پاونه پا ها هستند در سوریه توت است یه پاونه پا ها هستند لب قصه اینه که عربستان لبنان ناآرام میخواد آفرین بر رهبر مجاهد حزب سید حسن نصرالله به عنوان یک رهبر درست هدایت کرد و الحمدلله در شرایط کنونی رئیس جمهور لبنان هم همراه با جناب سید حسن نصرالله است ما امیدواریم توطئه این توطئه گران در لبنان هم کور بشه و اما فکر میکنم آخرین تحلیل نمیرسم به نقشه راهبردی راه امریکا در ایران آخرین تحلیل در رابطه با حوادث عربستان هست خب شنیدید دستگیری که این روزها حاکم تازه به دوران رسیده عربستان که الان عملاً ولی اهد گرچه امضای شاه سعودی او را دخیل میکنه در همه جنایاتی که انجام میرسه بلکه جریاناتی که میگذره الان زیر سر این جوان نپخته اگر نگویم بچه زیر سر این است دو تا مطلب اینجا گفت نیست اینه که یه دعایی ما همیشه داشتیم اللهم هم مشغل ظالمینه به ظالمین به خدا این دعا رو در عربستان مستجاب کرده جنایتکاران دیروز و امروز با هم در که همش هم بازی درگریز. اول کسی باید بگه پولهایی که شاه عربستان داره حساب رسیش بشه پولهایی که همین ولیحت داره یک میلیارد دلار در همین سفر داده به ترامپ که از او حمایت کنه تا برسه به سلطنت و شاهنشاهی این همون اوضاع اواخر رژیم شاه مسنترها خوب یادشون هست اواخر رژیم شاه شاه برای اینکه که بمانه وفادار ترینهاشو اونایی که جنایت کردن دستگیر کرد تا همه این تیله ها رو پای اینها بشکنه مردم بیدار بودند و تحت تاثیر قرار نگرفتند امیدواریم این حوادث و این زلزله ها روزهای آخر عمر این حکومت جنایت کارال آل سعود باشه نکته دومی که در این عرضت عرض می اینه که این جوان نپخته یا بچه نپخته مدام ایران رو تهدید میکنه مدام حزب رو تهدید میکنه ما مقابله میکنیم چنین اینو چنان خجالت بکشید از این حرفا یمن رو با خاک یکسان کردید سازمان ملل داره میگه قحطی بی‌نظیر در یمن در راه خوراک شما انگار کشتن آدم هاست سانیان، ای مجست عرصه سیمرغ نه نجولانگه توست ارض خود میبری و زحمت ما میداری بزرگتر از شما که صدام بود با این ملت در افتاد و سرانجام این ملت او را به روز سیاه نشوند شما که عددی حساب نمیشید دست بردارید از این حرف بچگانه اگر از این, این حرف های بچگانه ادامه پیدا کنه و به خیال خامتون وارد عرصه های عملی بشید یک سیلی خواهید خود که از جا نمیتونید بلند شید اللهم اكفر للمؤمنين والمؤمنات اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما دشمنان اسلام خار و ذلیل بگردان توت هاشون را به خودشان برگردان مقام معظم رهبری در پناهت موفق و معید و منصور بدار امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده بر علو درجاتشون بیفزای فرج امام زمان ما را برتان بسم الله الرحمن الرحیم ازا جاء نصر الله والفتح الفتح و رعیت الناس یدخلون فی دین الله أفواجا فسبح بحمد حمد واستغفره و انه كان توابا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته